احساس خدا امشب لامای تبتی ساعت یازده و سی دقیقه وارد اتاق شد و از من خواست فورا مشغول به کار شوم. به محض اینکه من پشت میزم نشستم دیکته خود را آغاز کرد روازاردارس در بحث امروز میخواهم درباره گسترش گسترش افق تو به منظور گذران زندگیت در این جهان صحبت کنم باید بتوانی در این جهان زندگی کنی در حالی که از این جهان نباشی مبهت امشب را احساس خدا نام می بذاریم. موضوع سخن درباره ایمان و قدرت عملی نهفته در توست که باعث می شود هر چرا از لحاظ معنوی لمس کنی به موفقیت معنوی بدل شود لحظاتی در زندگیت وجود دارند که احساس می کنی همه چیز در هماهنگی پیش میرود. پس کنی هر چه می‌کنی، علی رغم اینکه چه باشد، درست است و به نحو احسن و سهولتی در حد نهایت به انجام میرسد. تمام آنچه باید انجام دهی این است که تلاش لازم را به عمل آورده، به گذاری طبیعت روند خود را تی نماید. تو قادر نیستی این احساس را تشریح کنی. هیچ کس نمیتواند این راز احتساب جایگاه خدایی هر کسی است یا حتی راز دانستنی از درون است که میگوید همه چیز از نظر مقام متعال درست و به حق می باشد نخستین قدم در جستجوی همقطبی در فعالیت معنوی درون فیش آدمی این است که مطلقاً بدانی چه میکنی و با احساسی مثبت و دقیق به همراه اعتمادی در حد کمال به استاد آن را پیگیری کنی لیکن این عمل باید به گونه ای انجام گردد که در آن نشانه ای از تحلیل و کنکاش وجود نداشته باشد چون این مبادرتی اصولاً بستگی به عواملی چون روحیه و طبیعت معنوی آدمی دارد اساساً تعریف احساس خدا. از این قرار است آدمی در هماهنگی کامل با خدا فردی که مجرائی جهت جاری شدن قدرت الهی به این جهان شده باشد در واقع این احساس یعنی هنر کاربری ارتعاشات با تسلط کامل و اما چندین اصل کیهانی وجود دارند که با رعایت آنها میتوانی در جهت توسعه قدرت کیهانی در خیش اقدام نمایی اولین که نه تنها تنفست را در توازن با هوایی انجام دهی که تو را دربر گرفته است بلکه هوشمندی خود را نیز با آن هوشمندی که تمامی کائنات را دربر گرفته است همساز کنی و اما این به چه معناست بگذار با تو این چونین بگویم منظور این است که خود را هم از لحاظ درونی و هم از لحاظ بیرونی به هماهنگی برسانی در حالی که به تنفس کردن است توجه داری در عین حال با خیش الهی درونت هم یکی شوی چگونه می توانی مجرایی برای نزول قدرت اک باشی در حالی که از لحاظ جسمانی ذهنی یا معنوی هماهنگی نداشته باشی این عملا غیر ممکن است نفس کشیدن تو تا زمانی با از هماهنگ است که تو با خویش در صلح باشی تا آنجا که ذهنت را بر روی شکل نورانی من نگاه داری امکان دوام هماهنگی درون تو میسر خواهد بود من همه چیز را در جهانهای معنوی تحت تسلط و کنترل دارم و بر هر یک از مخلوقات خود من جمله آدمیان و حتی این محیط موقعیت و شرایط برای مثال به منظور کنترل کردن شرایط محیطی ذهنگرایان میگویند اطلاع از برخی اصول ذهنی معین الزامی است اما من میگویم راه سریعتری برای این کاربری وجود دارد که کنترل شرایط و محیط را امکان پذیر مینماید تکرار کلمات متبرک می تواند هر گونه وجوه منفی را خونسا و ترد نماید اکنون به نقطه ای می میرسیم که از کمال اهمیت برخوردار است و آن اینکه ما ركن به خصوصی در مغز خود داریم به طوری که هرگاه تصمیم بگیریم قدرت معنوی خود را خوزونی بخشیم میتوانیم به اند آن را تمرین کرده و ظرفیت این رکن را تقویت نماییم این عمل با ازدیاد توجه و تمرکز آن بر روی شکل نورانی استاد به انجام میرسد. این رکن معنوی از جانب بیشتر جویندگان چشم معنوی یا تیسراتیل خوانده شود این نقطه درست پشت قده ای به نام قدی سنوبری واقع شده که پشت چشمان و میان دو ابرو در بخش پیشین مغز قرار دارد. این ششمین چاکرا در کالبد لطیف ماست و گاهی آن را دو دال کانوال به معنای نیلوفر دو برگ می‌خوانند این را پشت چشمان یا دقیقتر بگویم درست هم سطح زیر کاسه چشمان و در مرکز حفر ای در جلوی مغز قرار گرفته که جایگاه قلدی سنوبری میباشد این نقطه نشیمنگاه ذهن و روح در کالبد آدمی است از این مرکز است که کنترل تمامی کالبد فیزیکی ما امکان پذیر است همه چاکراهای پایین از این تحت فرمان آن قرار دارند همه نیروهایی که گفته شده است بر کالبد ما تطلح دارند خود زیر سلطه ذهن و روح واقعند که در این نقطه مستقر می باشند و اما قانون دوم رشد از طریق جایگزینی عوامل کهنه با عناصر جدید مویستر میگردد با عوض کردن هر آنچه خوب است با بهتر از آن این یک فعل و انفعال مشروط و دو جانبه این باشد زیرا هر یک از ما یک جوهره معنوی است و کامل بودنش موجب میشود آدمی بتواند داد و ستت نماید در صورتی که او با اصرار از آنچه چه همکنون دارد در امکان دریافت نوینی برایش وجود نخواهد داشت بگذار این بگویم مشکلات، موانع و عدم هماهنگیها در شرایط مؤكد این واقعیت هستند که ما از زیر بار پذیرفتن مراتب بالاتر شانه خالی کرده و حاضر نیستیم افوق دید خود را گسترش دهیم هرچه قابلیت آدمی در دانستن آنچه مورد نیاز می باشد بیشتر باشد با یقین بیشتری وجود آن را تشخیص داده و قدرت اکراب به منظور استفاده جهت منافع مقاصد کیهانی به خود جهت می مینماید اكنون بگذار این نکته را نیز اضافه کنم. هیچ چیز قادر نیست پتو دست یابد مگر آنچه برای رشد تو ضروری است این در خصوص همه جویندگان حقیقی مصداق دارد همه شرایط و تجربیات در جهت منافع خود توست که به سویت می آیند مشکلات و موانع تا موقعی به حجوم خود به سوی تو ادامه میدهند که تو حکمت نهفته در آنها را درک کرده و از آنها اصول برتری جهت ادامه رشد خیش بسازی تو نیروی لایزال را درست آنگاه کسب می‌کنی که تلاش لازم جهت پیروز شدن بر مشکلات مربوطش را مصروف داشته باشی ضروریات تسلیم ناپذیر رشد معنوی اینچنین ایجاب می‌کنند که تو بالاترین درجه اش را از برای آنچه کاملا در انتباق با نیاز روح می باشد به خرج دهی. بالاترین شادی تو بعد از دریافتن و همکاری آگاهانه با قدرت کیهانی نصیبت می شود مختصرا اینکه ذهن بشر اغلب اسیر نیروهای فلج کننده طبقه زمینی میباشد که تماما پذیرفته شده و بدون هیچ سؤالی به مرحله اجرا می میشوند. تأثیرات حاصل از حراس، نگرانی، ناتوانی و حقارت به طور روزمره به ذهن تقریه می شوند. اینها به خودی خود دلایل کافی برای این است که چرا اکتسابات آدمی در طرق معنوی تا به این حد اندک می باشد. به همین علت زندگی توده های مردمی این قدر و بینتیجه شده است در حالی که در تمامی لحظات این امکان درونشان وجود دارد که نیاز به تماس با استاد را حس کنند و عظمت معنوی خیش را بسعت بخشند زنها احتمالاً بیش از مردها معلول این شرایط می باشند و آن هم به خاطر طبیعت پذیرای آنان است که باعث می شود در مقابل ارتعاشات بازتر از سایرین باشند و به همین علت هم سیل افکار منفی و سرکوب کننده به طرف آنان هدفگیری می شود زنها نیز مانند مردان آغاز به دراویختن از امکانات معنویشان نمودند آنان خواستار آنند که اگر زندگی رازی در خود نهفته دارد، پس باید فاش گردد دانش مدرن در حال آموزش این راز است که نور و صوت صرفاً عبارت از تراکم و حرکت بوده و این یافتهها منجر به کشف نیروهای درونی هم در مرد و هم در زن خواهند گشت معالن همه این اکتشافات آدمی را به سوی شکل نورانی استاد رهنمون خواهد شد به منظور برخورداری از سرزندگی تمامی وجود آدمی میباید با عشق اشباع شود. حالا میرسیم به سومین و آخرین اصل که میگوید به همان نسبت نصیبت میگردد که ایمان داشته باشی یقین تو در خصوص اهمیتی که استاد از بابت مسلحت تو قائل میشود باید در حدی باشد که امکان تماس با قدرت کیخانی را برایت فراهم آورده و جریانی را در تو ایجاد کند که برایت بنیه و نیرومندی لازم و کافی را به منظور متجلی ساختن مقصودت مهیا سازد این یقین محصول کالبد عاطفی انسان است. در جهان مادی اغلب آن را احساس مینامیم. شگرد کار در اینجاست که ما از طریق رکن عواطف درون کالبدمان با قدرت اک تماس حاصل مینمایی. من درباره فیش اصل عملی سخن نمیگویم، بلکه منظورم روح است. به این ترتیب میدانیم که این رکن در کالبد ما دقیقاً عاق چشمه قدرت درون است چرا در هویت جسمانی ما عواطف به آسانی بر عقل مسلط میشوند و چرا لازم است در افکارمان احساس تعبیه نماییم تا در رابطه با خدا موفق به دریافت نتیجه ای باشیم فکر و احساس در سطح روح ترکیبی مقاومت ناپویر در جهت وحدت با خدا می باشند بنابراین به منظور اتحاد با خدا در هر طبقه ای باید بدانی معتقد باشی و احساس کنی که مقصودت در حال اجابت است و اگر اراده خدا باشد یقینا انجام شده نیست در واقع ای که بر تو مسلط می باشد است که در این خصوص بکار می آید این چکیده ی آموزش تو باید اطمینان حاصل کنی که آرزومندی احساس خدا را داشته باشی و این مغوله در عبارت زیر خلاصه می شود. تشخیف طبیعت خلاقه قدرت اک و قابلیت کنترل آن در جهت مقاصد الهی. یک نکته دیگر که قصد دارم امشب پیش از رفتن روشن کنم این است که بین خودشناسی و خداشناسی تفاوتی وجود دارد خودشناسی دانش از خویش است همان پاراویدیا یا دانش معنوی در خصوص جهان بیرونی مثل دانش وداها نیایش در معبدها و مسجدها مطالعات اسراری خواندن کتب مقدسه ستار شناسی کبدار رفتار و اخلاقیات خداشناسی است به معنای فراسوی جهان حسی دانشی که درباره خداست کسی که به خداشناسی دست یافته باشد از اسارت همه اشیاء رها شده و در مقابل ساتنام می ایستد انگامی که مریدی وارد منطقه آتمالوک می شود از مادیت پاک شده و خود را به صورت روح خالص نظاره می کند این خودشناسی است آنگاه آزم اقلیم حقیقت هوکی کتلاک می گردد که طبقه نهم از جهانهای آسمانی است جایی که تجلیه برین مقام متعال را مشاهده و درون مقام خدایی مستغرق می گردد. آنگاه به شناخت خدا نائل میآید. این خداشناسی است چند نکته مهم دیگر تو در حال خارج شدن از توده های مردمی می باشی تو انتخاب و به محیطی وارد شده ای که من می توانم با تو کار کنم تا تغییرات کاملی در تو رخ نمایند این عملیات ممکن است اتفاقی قلم داد شوند اما این حقیقت ندارد این نتیجه منطقی یک قانون ثابت است که با دستور عملی بدون خطاب و گریز ناپذیر اجرا شده و نتایج بسیار اکیدی را در راستای طبیعت من به بار خواهد آورد نتایجی که مانند ریاضیات بسیار دقیق و از نظر منطقی کامل می باشند تو گسترش کال بد کیهانی شده و در جبدی از عشق کیهانی مستغرق گشته ای روح کسانی که به خدا عشق می به صورتی بسیار ظریف در اماکنی که بیشتر وقتشان را میگذرانند انعکاس میابد مکان‌ها هر یک جو و کیفیت‌های منحصر به خود را دارند که منجر به ایجاد ارتعاشات ذهنی کسانی میشود که در آنها زندگی میکنند در اینجا تورا ترک میگویم تا بحث آینده که درباره عشق بلا خواهد بود در این مرحله از معنویت راز و معموایی نخفته است که تو در طریق معنوی خود بر سر دراهی آن رسیده ای.